سلام دیدی؟ جسدشو دیدی؟ خودش بود؟ اه. ها حالا موقعشه موقعی چی؟ اه. الان باید قدم اولو برداریم همه متفق قرقل میگن که تو بردرئیس اداره انحصار بشی و همه یه بسوق و کاملی که به درایتتون دارم اما این راه روش درستی نیست برو آقا مرحوم پدرم دشمن زیاد داشت خیلی ها سر سربه نیستش کنن با اینکه حواسش به سایشم بود یقیم بدون چیز خورش کردن نمیدونم گفتم از قلبش و از کهولت سن و ولی هیچکس قبول نکرد رسم خاندان ما انتقامه مرحوم احتشام و سلطنه هم همینطوری بود با هر کی لنگه خودش رفتار میکرد مهرادم این آقا بزرگ کار مهراده؟ تو برو صندلی تو بردار برو بشین تو اتاق رئیس دادم یه نقاشی از مهراد بکشن بذارم اونجا اگه یه کسی بتونه پاچو جا پایتا و دول احتشام بذاره همین بچه هست مهراد شما نگران نباش خوهرچان یواش یواش اونچه که حق مونه رو پس میگیرم. کم مودی دستم بکنم تو کوزه حسن <تصفيق> حواست به چهار طرفت باشه این دور زمانه آدم فروشی رسمه ها کشم بد خواهد چه ها انداختن؟ پروفان بالا کشیده و یاوان روش آخه این چه بودونیه من فقط خواستم کار خلق الله رو بیفته وگرنه منو چه به خرید و فروش را بده بسون به خارجی ها خب با بارمو میتونم ببرم؟ بله بله بفرم بفرمو بفرم. خوش ببینم با ami szia! Ja? Ami! Kocagy! Mi a hír? Mi a hír? Őt születési emberes a هزار تو من ببینم بااتین جنس باششی مرددی نمیخوای پول بدی مبلغ مغوم شده همین امروز هم فردا پول رو میز آقا باشه اناری که لازم دارم شما بیش از اینا پیش ما اعتباریم. هم وقت جنستون آزاد شده فروختیم پولش رو پس می اندازه کافی فرصت داریم گفتم که اهل نزود دادن و سود دادن نیستی. یه اما دو ماهیه سال هم Aşkını ne, ne? ne? Négyestől. Ez a nő a strength ind людей if Enter ki pája majözt Allah az hugottatt- Öngödni élküggart Nemii a Praticai turki Valga Ez S 500 تای خرج داره حکمی زنگینه خیلی درگیریندوسی هم عطب بالاتو پایین نظمیه رو خرید بس کار شاقیم گفت که کار بس هم برسه همچینی آنه میکن این گار کارته به تو چه رفتی داره تو گوه سلطنه میگه همه چیز غیر از مردن چاره دارم افسانه اگه طرف حسابت مهراد خانه مصطفی باشه شما ما رو دسته کم میگیم و یعنی ما دسته گره گوشهایی هر فرمان لعنت من همیشه چوب دلم کنم این بارم گوش فقط یه چیزی آویزه گوشت کنم این کارو فقط به خاطر تو انجام میدم. می sinksی تو طاقت ندادم قصه تو رو ببینم. ولی نه اون آدم برام پشیزی ارزش نداره. من محبت، علاقتی که پاره نکن. من بچه‌ی بازارم اهل به درسو. از زندام میارمش، خونو جونشو میخرم. به که دومشو روز رو کولشو برگردم به هم دات که اومادم. تو زندگیمو بکشه بید. ولی این هم سرگ دوزادم. بعد یه منفایتی واسه من داشته باشه. سلام آقا. سلام. تجوری به این گلا دیگه میکنی. چرا زیادی بهشون آب میدی جنس این گلا با بقیه فرق میکنه هفته یه بار کفایت میکنه بیشترش مضرره چشماقا به درد شما... سرو گذاشتید الان کرده بودید خودم خدمت میرسیدن خونه زیبایی دارین شما ایرانی ها خونه و زمین از هر چیزی براتون مهمتره هرچی خونه بزرگتر و زمین وسیعتر باشه بیشتر احساس خوشبختی میکنید همه جای دنیا همینطوره یه دنیا مردم مملکتش انقد به فکر خریدن زمین و روستا هستن نه آقا اینجا فرق میکنه خوش شبتی بفر باید بفر باید باید قهوه دو تا تخ یا شیره تخ لطفا تخ بفر باید ممنونم <تصفيق> شما به عنوان رئیس جدید اداره انحصار میدونی تریاک بعد از نفت بزرگترین تجارت ما با ایرانه از یه وجه متحصف شدیم که عبالحسن خان توتونتی رو از دست دادی بله خدا غریق رحبت شروع کنه بفرمایید؟ باید <تصفيق> اما بچه دیگرش خوشحالی شماست خیر نه خیلی و همین چند مدت هم به باب خدمت ببیهن و شان و کری کردیم سه دو سال دیگه بیشتر از این اجازه نمیده این قبیل مسئولیت ها فقط مایه عذابه ادیتو 2 سال استراحت هم. بهتره که اختلاف نباشه به من ارتباطی نداره که این اتفاق چطوری افتاده و تقصیر اصلی گردن کیه بخشید متوجه مذلتون نمیشن اختلاف با کی حسرو یا هر کس دیگه ای که طرف معامله با من حالا دیگه این خان معلومیست از کجا اومده طرف شماست و با نیستی؟ این مرغومه پیش ما میمونه دیگه عمری جانبالیه همون دیروز باید این موضوع رو به ما میگفتی بنده که عرض کردم واقعا ما یه شرمندگیه که ما از این ماجرا اطلاعی نداشتیم. خدمت جناب کیتون سلام گرم منو برسونید. من واقعا نمیدونم با چه زبونی باید معذرت‌خواهی کنم. رجا لطفا خسروخان رو آزاد بکنید تا بعداً بهتون بگم چکار کنیم. من از شما انتظار دارم که طوری با جناب مهرگان صحبت بکنید که اھیانن کینهی خرد برده چیزی از من دل نگیرن و با گوسرجوری عفو بفرمایید. برخلاف معمول خسروخان رفتارهای خوب و آدما رو بیفوسوخ نمیذارم شما باحذرید که ما از هویت ایشون بی اطلاع بودیم اگر میدونستیم که محالات بود که این اتفاق بیفته به هر حال اتفاقی که افتاده صرف حرفای شما ما نمیتونیم رو آزاد بکنیم الان هم به مسئولیت دوستانه که داریم این کارو میکنیم وظیفه ما برقراری نظم شما هر هر ادعایی بکنه ببخشید این طرف میزنم اون موقع موادی که هیچ سنگی رو سنگ بند نمیشاه به هر اختیار شما با شما حرف دارم میارمش نگران نباشید ولی لازم نیست اموال خوشونت بکنیم داکترا بمدان هر چی دیدن میگه چی میخوام بگم ما نگرانی شما امنیت برقرار کنیم دیگه دنبال وقت زندگی نمیگردید از اینا فرصت جو کنید آقا ما چوکر و نوکر شما و پدرتون و جد و آبادتون هستیم آقا ما چیزی برای به کردن نداریم که و خدای نکرده شما بخواید ما رو مغور بیارید عمرو بفرمایید همینجا مثل بولول براتون چهچهه میزنیم اصلا تاریخچه خودمون و خاندانمونو میرزیم رو داریه بهتره که اختلافی نداشته باشیم اختلاف؟ بندی کسارتی خدمت شما کردن جناب توتون چی آدم کل شق و یدندهی بودن <تصفيق> شاید همین کل شقی و یدندگی به این روز انداختهش. از شما توقع دارم که عاقلانه رفتار کنی مطمئنم که تمام قواعد بازی رو بلدین میزه گرم قیمتیه چیزایی گرم قیمت دوست دارین نه <تصفيق> از این اکسم خوشتون بیان خادم آدم اصلا حسروخان خانه راه ها و کوره راه هاست اسمش موبه تن راهزن و حق بگیر سیخ میکنه آدمی با این توان باید برای ما کار کنه زیر نامه آزادیش امزای منه اگه تا امروز ندونسته بار منو جابجا جا میکرد از امروز میتونه به فهم عربابش کیه من تلاش خودم رو میکنه بفهمی کنم یه موضوع دیگه هم هست میرزا سری تشریصات نیاز داره ببین چه میخواد خوهرزادت بله بله بهش بگو ترتیبه بروده تجهیزات به کشور بده چشم شما نگران این قبل موضوعات نباشید <تصفيق> نگران نیستم جایی قشنگیه مبارکتون باشم مبدون درستش رسید بله آقا پس اومدن م. بله آقا <تصحیح> نیازی نیست آقا من خودم جمع کنم فیارتون را رو... من هرچی رو هر جوری بگیرم، بگیرن همونطوری تحبیل میدم امی نیستم که به کاری کسی در اونم خریت کردم آقا هرکه شاخ که نداره که آدم ایزا چی خام خورده از آدم یهو یه غلطی میکنه بعد ما تو محبود بیمونه که چیکار کرده ما ختم از این کوچیک است بخشش از شما بزردتره از دندنم همیشه توه <تصفيق> برای چی ننگاه داشتی؟ آقا آدم ازادی گنه و ازش سر میزنه یه از لام که خدا سر تقصیلتش میگذره آقا آقا آن میدم از هر روز بیام بگم غلط کردم و برم بری آقا تقصیل من نبوده من چه به من بگم بزن من میزنم به من بگم نزن نمیزنم من جیره بگیرم من عمالم آقا من, من, من عمالم کجا دارین میرین؟ خب خون بریم خونه واقعی هوایی تازه کنیم. کجا؟ یه جایی که بتونیم چند کلمه با هم دیگه خصوصی حرف بزنیم. تمام این روزا حسرت خوردم که چرا حرف دلمو بهت نزدم. چرا نگفتم که از خارجی برام من میخوام برگردم خونه. یه فرصت کوچیک رو من بده. فکر نمی کردم یه همچین آدمی باشی. نگاهم من میخواپ پیاده نگه اشتباه می Našao zar tu nadaram. Megadot ne demišem. Već konstam ne demišem. Mehvano sapko. Kuš kameral. Azat buxta səslə və نخواستم به این چیزی بفته بشم که ازم نراحت بشه هیچوقت نخواستم از من انجده خاطر بشه اما اله ازت بخواب که من منو فراموشم کنی فکا من مردم فکا وقت نبودم دیگه اسم منو نیاد هیچ کاری نمیخواب برای نرم اجرا فراموشم کنی میشنمی مهرات مهرانو دیگه مرده چه خسراتو زنده هم بیاد می؟ چه نهیاد بیرم من دیگر صدر رو نمیارم حتی اگر تنهایی ببیرم باده این کسو تو نمیتونم زندگی کنم مردم خوشم نمیاد خوشم نمیار از سام غمر کجا بودی؟ چشون جاشون امنه جانتون از اون هتلی که دشمناتون سراختون باش رو منرسن بردم بیرون علا خونن آقا فقط یه چیزی دیگه بگو خانو مرخ بانو سر زیاد من نمی نمیخوام در این باب نتو نه هیچ کسی دیگه یعفی بزنه چشم چشم میخوام همه رو در مورد مهراد مصطفی جد دعوادش برام در بیاریم ببینی کجا آدم دارن قرشم کجا میره؟ دشمناشون کین دوستاشون کیا اون چشم آم. ان نماینده ای چه تقاضا مرتب کنه چاش گورتو شما مگه به من نگفتین مت که پاپاتیه واقعا چقدر خوب هوایی ما رو داشت خوب ما رو انداختی تو دهنش درست حافظ زمینم چی شده چی برای امریکا نامه اومده نام کی؟ مارکت از کیه تو چیکار کردی خوب رفت دیگه خوب غلط کردی منو من تو رو گذاشتم تو از نامه این اونو جوابات کنی نام من تا چی؟ چند نفر زاره با شناسه ای کردن کی دیده؟ آه. این مهرکان آدبایی وهمی نیستن آه. حرفشون حکسی نداره اون همه نو کرم چاکرم این شد تو زادر جناب رئیس تو زف ناف استاد کن جناب مصطفی این جوجه خرومی با سلامتون قطر داره شما چه قولی من دادی قرارمون چی بود ماله. روی روزگار که معلومنی کی به کیه تو سر هر کی میزنی دمش به جواب اصل آقا سلامتی شما رئیس نظمیایی نه دست جارو ای آقا اگر رئیس نظامیه ارج قربی داشت که الان شما هر دارد میخواست بهش پیش نمیگفتی من نمیادم اینجا درد دلای تو رو گوش بدم یارو کیه نمیدونم کیه و با کاربارش چیه و به کجا وصله؟ ولی این میدونم که با نقدینگی یه جیبش منو شما رو میخره و آزاد میکن. پشتش به کور بصله از من می هیچ کاری به کارش نداشته باشی باحش سر هر چی بحث و جدل و درگیری دارین سراموش کنی نمی‌دونم چرا اینجور کارا رو به آدم کوچیکی مثل تو سپردم و رو تحساب باز کردم که بند تو مونت هم نمیتونی جمع کنی مهران خان دیگه دارین حرمتی رو از حد به در میبرید آدم متقمقت رو واکی کردی راس سر تو خمو رو می‌میره با شما چه خوشونه می‌کشی بفهم معقولم بفهم چایی جنگو ما, ما کشو اوضاع خیلی خطرناک شده همه همه‌چی به هم ریخته. بعد بنیم. این شعبان بعد بنیم. چی بنیم دیگه مگه میشه؟ آه، چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ فقط باز چیزای ضروری رو برداریم. هر چی سبک بارتر سفر کنیم بهتره. میتونیم دورتر بشیم. من نمیتونم. یعنی شما نمیتونن بیجا میکنید نمیتونید. دست خودت بفهم ضعیفه. میگم همه چی به هم ریخته وضا خطرناکیه باید برم. من بهش نگفتم طول به حساب دودمانمون رو به باد میده هی ای گفت اینو به اون رو بخرب زر رو تاخ چه همسایه و فامیل دارید اینا الان گورا رو در بیار, بیار ببینم جیرینگ جیرینگ دا انداخیه در بیار باخت کنیم بفروشیمش میگم من گفتم اینا گرگن گفتم این از جنس تو نیستا گفتی نه من حریفشون میشم من گفتم من گفتم من چیکار خوردم مثلا گفتم الان میگم من پسشون بر نمیام تمام زود باش زود باش اول پس نشم کن واس ببینم ما که هم اولینو گفتم صد رحمت به گه بیابون ما رو هفت ساله از جای 400 خدامو گه بیابون شام تو چلیم بیراه میذیناشون صد صبا نگفتم. گفتم اینا نوکر و حکومتن دومشون مدوم دوم گل افتا گره خورده یه چیزی بشه خودش رو در, در میکنن سگاشونو میذنن به جون مردمم یه کارو نکرده دو تا حرف حساب ما خیمه خیمه میکنن. سر با نگفتم کاسا تو عکاسه اینا جدا کم می این روزا دیگه. الان ما رو داریم میریم تناوب. آ چرا جفنگولی چهار آدم میکنی؟ یه کلمه حرف زدم، یه کلمه شلوف، یه کلمه جواب بده تمام. تو آدمو سرسام میندازی بس که حرف میزنی. من نمیدونم چرا شما زنا رو با زرچبو تخموموک برداشتن که انقدر میتونی پشت هم دراز حرف بزنین؟ آ سرسام تو ما. آقا میخی وردا ببر بفروش. من باید با دارم بابا نانامو در حمصاد خدافزی کنم چرا تو دروغ به با همه بافم بردا هرچی خواستی باد میام این چششم به چشش در چهش در اومد و یکی از در بیاد بگه ما بدبخ شدیم اصلا چه شانش را خوشبختیه ما رو ببینن حالا میاد دروغ میبافم میگم منتظر شدی فلان قبل سو جیس فلان دایر شد میگم چششم در بیاد نمیشن من میتونم دزد با تو اینجوری فرار نمیکنم اسمای مش اخمجام کرم دور خودم یه سوراخسون بیای جایی نبودید ناوی اونجا آقا خودتون فرمودین بیاریم اینجا میخواین ببریمش میری به این آدرس میگی به آتاق سیزده کار داری اسمی از من نیری بله به فتا بگو جاشم نیست چند نفر دیدنش بگو یه ماشین میفرستم برنش بیرون شه جال چشه مردم نباشه بهتره بله آقا بگو در مورد پیشنا که داده میخوام آشه اختلاط کنم آقا اینو رو بذارم اینجا اینو رو ب آینده که شاد از غمی که زیاد به میاد <تصفح> نه حقم نبود عشقم واسه تو کم نبود حقم نبود حاقم نبود اینطور من خود سود بدنجون نبود اما اله ازن بخوام که آره برای دخترم به چه کنین دلشوره های بیدلیل و از اون دله خب دیدی که نادرخان چی گفت شکر خدا بر رفت مراده خبرای خوبی هم تو راهه آقا جون آقا جون آقا جون اگه نگاه این دختری یکی یه دونشو نخونه که دیگه به درد جرس دیوارم نمیخوره من تو تالعت روشنایی میبینم اون پیشونی روشن روشن چه برگم زن و بگی بگی اون برق بگی بچشم رو زهد پیغام دادم داییتم میاد دایی؟ بودنش لازمه بله چه کاری؟ نفس بدن بهتره برای اون بدبخت که دم در خونه چوم باتمه چادر زدن هرچی زوتر یه جمابی بدی خوبیت نداره آقا جون با این همه اتفاقایی که افتاده نه به داره نه به به دار که هست اینشالله به بارم میشینه تو اصلا نگران نباش اینجا رو شیش ماه اجاره کردم خیلن برای اینکه کمالکانو ما هستان اینجا باشم مناسبه در توم اون دارم الان گوشتو نیست اینطوری. یواش‌تر. پاسو یادت. سوا پاسو. قبول نداری. یادت نیست گفتی کار نشد نداره؟ بزنه گومو گور شو دیگه. ردیمو زدن نمیشه. می خود بزن گش میکنی. یه آدم تبلت تو خالیه. فقط صداست. تو برابر بهت میدم اگری سهول کن باش از مسالهه گذاشته اون خوردن افخوردن خودتو دایی و ننه و خارتو میکشه من از کسی نمیترسم من میترسم دیدی چه بلایی میشم سر رو بیارم. شما بعد که فاید دشمن داری بهتر انگوش کلونه ای من نکنی بعدشم من هیچ وقت با کسی که باشگاه کرده میشه خیانت نمی کنم هیچ وقت البته تا امروز صابونه کسی منزل نیست عشق کجاست نمیشه حبس کرد پس کجا بودی یا عشقت اش نیست یا حرفت قلابیه دیگه حسابی از خجالتت درمادن دی انصافا اینا که زخم صورتت دلمون زخم نشه اگه به همین زخم رسیدگی نشه حپادرت میاره خودم زخم؟ این یا این؟ منتظر بمونید، می‌خوام چیزی برای التیام زخمتون پیدا می‌کنم. بعدا باز واس سیگار کنم آقا به من میگی برعخره من با سیگار کنم یا نه چی واسه نگاه کنم من میدونم آقا من میدونم این یارو تا دنده و دندونای منو نشکنه بلکنه ماجرا نیست این واسه من نقشه‌ داره آقا واسه نگاه کن گفتی گفتی درد رو داری بیشتر مایلم زخم دلم و مرحم بذاریم پس اگر اینطوریه باید بریم پیش حبیب زخم دل نازش هست حبیبه یه آن ترس برم داشت شده بود این قصده ها یه تهمتی بهتون زدم قبل از اینکه بخوام معذرت خواهی بکنم یه رو قیبتون زد حتی صدامم بهتون نمیرسی گفتم نکنه من انگاری افتادم توی قصه ای مدتی یه حال عجیبی دارم یه حالی که داره تجربهش نکردم یه حسیه که نمیدونم اسمشو چی بذارم خیال برم داشته بود که حسام پسر خودتونه خب اون عشق و محبتی که شما نصارش میکردین کمتر کسی خرجه بچهش میکنه به هم حق بدین که به خطا بیفتم. شما همیشه حق داری چیزی نیست ادامه بدین شما میگفتی نمیدونم اسمش چیه آرزو امید زو همه ایننا هست و هیچ کدوم نیست فکرش میدونستم اون چیزی که دمو دستکاری کرده اسمش چیه من به عشق بینم فکر می کنم دنیا از دو نفر عاشق و معشرغ می ترسههیله روزگار فراوونه اشاق به هزار ن رنگ و فریبت هم دیگه دور میکنه بعد که یه مدت میگذره چشمت از روشنایی خسته میشه و دلت حوث تنهایی و تاریکی میکنه اینجوری فکر میکنین چون عشق خود تجربه نکردین شما تجربه کردی. <تصفيق> به سلامتی شما آزاد شدی دیگه نه چیه با سهرانت جایی کجا مراتان کار داره. گفتن ها رو بهش گفتم اه میگم کار واجبت داره گفته الوعده وفا نه وعده یه نه وفایی باشه باشه صب کن میام فقط خواهیم باید باش واسه من پیغم پس میاری یا بماهد آقا آبودم ایش آقا تو دفتاره به زوری کردنه که آبودم ایش نمی که اونها اونجاست این چه کار مهمه که من تا اینجا کشوندی ازت قول گرفتم اگه آزادش کنم یک کاری کنی شررشو کم کنی بد کردم بهت نگفتم نمیخواد کاری کنی این آدم بد گرفتاره من تا یه مدتی میتونم بیرونه گرش دارم حتی ازش بفهمی که من درش آوردم فکر میکنه دست از سرش برداشتن ولی بر نذاشتم خودت دور باش حرف زن چرا که دست از سرش برداری جواب رد بذاری تو کاسه اش دومش رو میزنه من به درد تو نمیخورم دست از سر من بردار کی از من حرف زد نقل این حساس آقا این آدم خطرناکه دست تو کارایی داره که اگه بفهمی دو دست از سرت بلند میشه آقا سلام آقا خیلی مفتزم آقا قدم رو جفتش بوی ما مشکل غلط کرد آقا خیلی خوش اومدید قدم رو جفت چشمه ما گذاشتیم خیلی خوش, خوش اومدید آقا. آقا. آقا. آقا اونجا بفهم خسرو خان شما چی چیکار می‌کنید من باید با این آقایی که ناجون بوده مردونه حرف بزنم بخوزرو خان شما لطفاً بیرون منتظر باشیم ولی شما آخه مردونه آقا فرمیدم بفرمیم بیرون درشکش هره بده آقا همین بازم بخون مردونه رو پزنه از همینش دردیدم هره درد بخون ببینی مردون ببر دستور دادم بیرون بشن چهش آقا ساله کیش کیش کش کش جاف بفرمم بفرمه خانمان شما بفرمه این هره دیگه اینجا که جای خانمانیست بفرمه خانمان بفرم خواهش می کنم. خسرو خوست رو خوام. بفرما من. میریم تو این کف میزننی. نمی خوام بت بزنم. می‌خوام ببینم بدون خدم عشمت چیکارایی؟ خوست رو خوام شاید تو ده کره خودتون خام باشی. ولی اینجا آدم تشوی هستی که جارات نداره حذیر تننابر رد رشه. کسی تو زندگی من سرک نمیکشه. اینی که توش میگی زندگی زندگی من بود. بیا بگره دست از کام دست از بیا بیا بیره بزن بگره دست از کام بزنگه پریده بزنگه شکنم بیا بزنگه Köszönöm, hogy